Suraynu. Ta'awwudu al-shaytan ارسلنا نوحا الى قومهی ان انذر قومک من قبل ان عذاب الله که بخشاگنده و با رحمت است ما نوح را به سوی قومش فرستادیم تا آنها را قبل از آنکه عذاب دردناک گرفتارشان کند هشدار گفت ای قوم من برای شما پیامبری هشدار دهنده و آشکارم خدا را بپرستید و حرمت او را نگاه دارید و از من اطاعت کنید تا خدا نیز گناهانتان را بیامرزد و شما را تا مدتی معین مهلت دهد زیرا هنگامی که عجل الهی بیاید تأخیری در کارش نخواهد بود اگر درک کنید گفت پروردگارا من قوم خود را شب و روز به سوی حق دعوت کردم اما دعوت من جز بر فرارشان نیفزود هرگاه من آنها را فرا خواندم تا تو آنها را ببخشی هایشان را در گوشهایشان فرو کردند و جامعه بر سر و در مخالفت اصرار ورزیدند و متکبرانه رفتار نمودند باز من آنها را آشکارا به توحید دعوت کردم و باز هم به آشکار و هم در نهان آنها را به سوی تو فراخندم و گفتم از پروردگارتان طلب مغفرت کنید که او بسیار آمرزنده است بر شما از آسمان پی در پی باران می‌فرستند و شما را با اموال و فرزندانتان مدد میدهد و برایتان باغ‌ها و نهرها آفریده است شما را چه شده است که برای خداوند شکر و عظمت قائل نیستی حال که همه تان را مرحله به مرحله آفرینش بخشیده است. آلن تر کیف خلق و سبع سماوات قباق و جعل القمر فیهن نور و جعل شمس آیا نمی‌بینی که چگونه هفت آسمان را بر یکدیگر خلق کرد است؟ و ماه را مایه روشنی آسمان ها و خورشید را چراغشان قرار داده است این خداست که شما را چون گیاهی از زمین رویاند سپس شما را دوباره به زمین برمیگرداند و از زنده از قبرها خارج می نماید. این خداست که زمین را چون فرشی به زیر پایتان قرار داد تا از راه های وسیع آن عبور کنید نو گفت پروردگارا آنها نسبت به من نافرمانی کردند و از کسی پیروی کردند که مال و فرزندش جز به زیانش نیفزود است و اینها فریبکاری بزرگی مرتکب شدند و گفتند خدایانتان را رها مکنید و از بطهای ود و سواق و یغوس و یعوغ و نصر دست بر ندارید آنها بسیاری را گمراه کردند پس ظالمان را جز گمراهی میفزاد بدین دینسان همه گی به خاطر گناهانشان غرق شدند و در آتش وارد شدند و جز خداوند بزرگ هیچ یاوری نیافتند نو گفت پروردگارا هیچ کافری را در زمین زنده باقی مگذار اگر آنها را باقی بگذاری بندگانت را از راه حق گمراه میکنند و جز پر زندان فاجر و کافر به دنیا نخواهند آورد پروردگارا، مرا و پدر و مادر مرا و اهل ایمانی که به خانه من آمدند و نیز جمیع مردان و زنان مؤمن را بیامرز و ظالمان را جز هلاکت میفزا بِالْفِرِنِ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ راست گورد. خداوند بلند مرتبه بود، از این کاری از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و علیه و